بسم الله الرحمن الرحیم بنام خداوندی بی مهربان نهایت بارح وقت این کتاب از جانب خداوندی صاحب قدرت منی و با حکمت است ما این کتاب را به حق بر تو نازل کردیم پس خداوند را پرستش کن و خاص به او بندگی کن آگاه باش دین خالص از آن خداست و آنان که جز او کسانی دیگری را دوست می‌گیرند و می ما اینها را پرستش نمی کنیم جز برای آنکه ما را به خداوند نزدیک‌تر گردانند بیگمان در چیزی که ایشان در آن اختلاف می ورزند خداوند در میانشان حکم می کند. و خداوند کسی را که و ناسپاس هست هرگز رهیاب نمی سازند. اگر خدا می خواست فرزندی بگیرد از آفریدگان خود آنچه را می خواست برمی بوزید. ولی خداوند از این نسبت ها منزه است و هم اوست خدای یک تای بسیار غالب آسمان ها و زمین را به حق آفرید شب را به روز می پیچاند و روز را به شب می پیچاند و آفتاب و ماه را مسخر گردانیده است هر کدام از اینها تا موعد معین گردش می کند آگاه باش اوست صاحب قدرت مونی و آمرزگار شما را از یک تن آفرید سپس از وی همسر او را آفرید و برای شما از چهارپایان هشت جوره فرو فرستاد شما را در شکم مادران شما به آفرینش پس از آفرینش دیگر هستی می بخشد. در میان تاریکی های سیگانه این است خداوند پروردگار شما پادشاهی از آن اوست جز او معبودی نیست پس چیونمون منحرف می شوید؟ اگر کافر شوید یعنی ناسپاسی کنید پس بیگمان خداوند از شما بیمیاز است و با کفران نعمت بندگان خود خوشنود نمی شود. و اگر سپاس گذارید از شما خوشنود می شود. هیچ بردارنده بار گناه دیگری را بر نمی دارد سپس بازگشت شما به سوی پروردگار شماست و شما را به آنچه می کردید آگاه می سازد حقا که او به آنچه در سینه هاست دانا می باشد و چون به انسان رنجی برسد به پروردگار خیش روی آورده و به درگاه او نیایش می کند سپس چون با او از نزد خودش نعمت ارزانی کند آن نیایشی را که به درگاه او از پیش می نمود به فراموشی می سفارد و با خدا هم تایانی قرار می دهد تا دیگران را نیز از راه او منحرف سازد بگو او کنون برای مدت محدودی از این روش کفر اندود خیش به شو بیگمان تو از اهل آتش دوزه هستی آیا کسی که ساعات از شب را به عبادت سجده و قیام می گذراند از محاسبه روز قیامت می ترسد و به رحمت پروردگار خیش امیدوار است و مشرک ناسپاسی برابر است بگو آیا آنانی که می دانند و آنانی که نمی دانند برابرند بیگمان خیرتمندان پند می پذیرند بگو ای بندگان مؤمن از پروردگار خود بترسید برای کسانی که در این دنیا خوبی می کنند خوبی است و زمین خدا فراخ است واقعا برای صابران مزد بیشماری داده می شود. بگو به من امر شده است تا خداوند را با اخلاص و صمیمانه پرستش کنم و به من عمر شده که از نخستین مسلمانان باشم بگو اگر پروردگارم را نافرمانی کنم واقعا از عذاب روز بزرگ یعنی قیامت می تسم. بگو خدا را می پرستم در حالی که پرستش من برای او خالص و سمیمانه است پس شما آنچه را جز او می خواهید بپرستید بگو بگو زیانکاران زیان کاران کسانی اند که خود و اهل خیش را در روز قیامت زیان من صافتن. آگاه باش این از همه زیان آشکارا برای ایشان چتری از آتش بر بالای سرشان است و چتری نیز زیر پایشان این چنین خداوند بندگان خود را به این عذاب می ترساند ای بندگان من پس از من بترسید کسانی که از پرستش شیطان اجتناب کردند و با خدا روی آوردن برای ایشان مجد است پس آن بندگانم را مجد آنانی که سخن را می شنوند و بهترین آن را پیروی می کنند همین کسانی که خداوند هدایتشان کرده است و هم ای شانن پس از آیا کسی را که بر او حکم عذاب ثابت شده است می توانی نجات دهی یا آیا کسی را که در میان آتش دوزخ است می توانی نجات دهی؟ لیکن کسانی که از پروردگارشان می ترسند برای ایشان مارات چندین منزله است بالاخانه خانه بالای بالا بنا شده است که از زیر آنها جویبارها جریان دارد چنین است وعده خداوند خداوند هرگز وعده خود را خلاف نمی کند آیا نمی بینی که خداوند از آسمان آب را فرو فرستاد پس آن را به چشمه های زمین جاری ساخت سپس با وصیله آن کشت های رنگارنگ رنگ را برمی آورد بعد از آن خشک می شود و او را زد شده می بینی بعد از آن آن را ریزه ریزه می گرداند در این برای خیردمندان پندیست آیا کسی که خداوند سینه او را برای اسلام باز کرده است و او به روشنایی از جانب پروردگار خیش قرار گرفته است مانند سخت دلان است؟ نه پس وای به حال کسانی که در برابر ذکر خداوند دلهای سختی دارند ایشان در گمراهی آشکارند خداوند بهترین سخن را نازل کرده است کتاب را که آیات آن مشابه یکدیگر دیگر و دوتایی است از شنیدن آن لرزه بر پوست اندام های کسانی می که از پروردگارشان می ترسند. سپس به ذکر خدا آرامش پوست و دلهای خیش را باز می آبند. این از هدایت خدا که با وسیله آن هر کی را بخواهد رهیاب می و کسی را که خداوند گمراه کند برای او هیچ رهنمایی نیست پس آیا کسی که در روز خیامت با ناگواری عذاب مستقیما بر روی خود برخورد می کند با کسی که محفوظ است برابر بوده می تواند و هم گاران گفته می شود مزه چیزی را که کسب کرده اید بچشید کسانی که پیش از ایشان بودن نیز کلام حق را تکذیب کردند و عذاب از جایی به ایشان رسید که احساس نمی کردن. پس خداوند رسوایی را در زندگی دنیوی به ایشان چشان و بگمان عذاب آخرت بزرگتر است اگر ایشان میدانستند. بگمان در این قرآن برای مردم هر مسئله را زدیم تا باشد که پند گیرد قرآن عربی دور از هر نارسایی و کجید باشد که پرهیزگاه شوان خداوند مردی را که به شریکان مختلف متعلق است و مردی را که تنها به یک نفر تسلیم می باشد مثال زده و پرسیده که آیا این دو به حیث مثال مساویم ستایش مر خدای راست ولی بیشتر ایشان نمی داند براستی که تو می میری و براستی که ایشان نیز می میرند و باز یقینا در روز قیامت و حضور پروردگار خود دادخواهی خواهی می کنید پس کی ستمگارتر تر کسی که بر خدا دروغ بربست و سخن صدق یعنی قران مجید را چون به او رسید تکذیب کرد آیا در دوزخ جایی برای کافران نیست آنکه سخن راست را آورد و آنکه او را تصدیق نمود هم ایشانند پرهیزگار. آن چه بخواهند نظر پروردگارشان برای ایشان مهیاست، این است پاداش نیکوکاران تا خداوند از ایشان به ترین اعمالشان را بزوداید و ایشان را به بهترین اعمالی که انجام می دادند پاداش دید آیا خداوند به بنده خود بسنده نیست که تو را به کسان غیر او ترسانند؟ و کسی را که خداوند گمراه کند هیچ هدایت ای ندارد و کسی را که خداوند رحیاب سازد هیچ گمراه ای ندارد آیا خداوند صاحب قدرت مونی و انتقام گرنده نیست؟ اگر از ایشان بپرسی چی کسی آسمان ها و زمین را آفرید؟ حتما می خدا بگو آیا دیدید؟ اگر خدا بخواهد به من زیان برساند آنهایی که جز خدا و ایشان نیائش می کنید این یا آن را از من برطرف کرده می توانند؟ یا اگر به من اراده مرحمت بفرماید آیا ایشان رحمت او را باز داشته می توانند؟ بگو خداون برای من بسنده است و توکل کنندگان بر او توکل میکنند. بگو ای قوم من هرچی از دست شما میآید بکنید من نیز به وظیفه خود عمل میکنم. کنم به زودی یافت کیس که برایش عذاب رسوا کننده می آید و او را عذاب دوامدار فرا می گیرد بگو من ما کتاب را بر تو برای مردم به حق نازل کردیم پس هر کسی که رهیاب شد به نفع خود اوست و هر کسی که گمراه شد به زیان خود او می و تو زمدار ایشان نیستی خداوند ارواح را در هنگام مرگ میگیرد و آن را که در خواب خیش بوده و نمرده است نیست پس روح کسی را که مرگ را بر او حکم کرده جدا از کال بوده او نگه می دارد. و روح آن دیگر را که بر او حکم مرگ نشده و کالبود او باز می تا زمان معینی بیگمان در اینها برای مردم اندیشمند نشانه است. آیا دیگران را جز خدا شفیع گرفته اند؟ بگو آیا اگر ایشان هیچ قدرتی نداشته باشند و هیچ خیری را نفهمند؟ بگو شفاعت به تمام کمال از آن خداست و هم پادشاهی آسمان ها و زمین از آن اوست و سپس در آخرت نیست و سوی او بازگردانی می شود و چون خدا تنها ذکر کرده شود دلهای آنان که با آخرت ایمان نمی آرند می رمد و هراسان می شود ولی چون دیگران جز او ذکر کرده شوند در این حال است که این نامسلمانان شادمان می شوند. بگو خداونده ای آفرین آسمان‌ها و زمین و ادان پنهان و آشکارا توی کمیان بندگان خود در آنچه اختلاف می حکم بیکنیم اگر واقعا همه وسایلی که در روی زمین وجود دارد و حتی دوچندان بعد از ترس ستمگاران قرار داده شود آن را برای رفع قسمت از سختی عذاب روز قیامت فدیه می دهند. ولی بر ایشان در اثر عذابی که از جانب خدا عاید می شود چنان حالتی به وجود می که هرگز گمان نمی کردند. در این حالت است که بدی اعمالی که مرتکب می شدند به ایشان ظاهر می شود و بر ایشان عذابی که به آن تمسخر می کردند احاطه می نماید گمان کسانی که پیش از ایشان بودند نیز چنین گفتند ولی اعمالی که انجام می دادند عذاب را از ایشان دفع نکرد و به جزای اعمال ناشایسته خود رسیدند ستمگاران این مشرکان نیز جزای اعمال ناشایسته خیش را میبینند و ایشان هرگز عاجز نمی توانند یعنی تقدیر خدا را تغییر داده توانند آیا ندانستند که خداوند روزی را به هر که بخواهد فراخ کند یا تنگ بیگمان در این برای کسانی که ایمان دارند نشانه است. بگو ای بندگان من که بر خود ستم کرده اید از رحمت خدا ناامید نشوید بگو من خداوند همه گناهان را میامرزد بگو هم اوست آموزگار و مهربان و به پروردگار خیش را جو کنید و به او تسلیم شوید پیش از این که اعذاب به سراغ شما بیاید و باز یاری دادن نشوید و این بهترین سخنی را که از نزد پروردگار شما به شما نازل شده پیروی کنید پیش از اینکه با شما ناگهان عذاب بیاید و شما آگاه نباشید پیش از آنکه کسی بگوید ای وای بر من که در حق خدا کوتاهی کردم و بیگمان من از تمسخرکنندگان بودم یا بگوید اگر خدا مرا هدایت می کرد یقینا از پرهیزگاران می بودم یا هنگامی که عذاب را می بیند بگوید ای کاش به با من بازگشتی میسر می بود تا از نیکوکاران می جواب این خواهد بود آره آیات من به تو آمد و آنها را تکذیب کردی و تکبر ورزیدی و, و از کافران بودی. در روز قیامت آنانی را که بر خدا دروغ بستن می بینی که روحایشان سیاه است. آیا برای متکبران در دوزخ جایی نیست؟ و خدا پرهیزگاران را با کامیابی ایشان نجات می دهد. به ایشان بدی نمی رسد و نه هم ایشان اندوهگی می شود. خداوند آفری هر چیز و سرپرست همه چیز هاست. قلیدهای خزانه های آسمان ها و زمین از آن اوست و آنانی که آیات خدا را تکذیب کردند هم ایشانند زیانکار. بگو ای جاهلان آیا به من دستور می دهید که جز خدا را پرستش کنم؟ بگمان با تو و با پیشینیان تو وحیه شده بود که اگر شرک وری واقعا عمل تو هبته می شود و بگمان از زیانکاران می شود بلکه خدا را پرستش کن و در زمره شکر گذاران باش. مشرکان قدر خدا را توری که شایسته اوست ندانستند. در حالی که در روز قیامت همه زمین در قبضه اوست و آسمان ها در ید راست بلاکیف او پیچیده می باشد. او پاک و برتر است از چیزهایی که با او شریک می آورد. و هنگامی که در سور دمیده می شود. از صدای آن همه کسانی که در آسمان و در زمین اند بیهوش می شود. مگر کسانی که خدا بخواهد. سپس باری دیگر در سور دمیده می شود. و در آن وقت است که همه مردم استاده می شوند و در انتظار بزر می برند زمین به نور پروردگار آن روشن و کتاب یعنی نامه اعمال نهاده می شود و پیامبران و گواهان آورده می شوند و در میانشان به حق فیصله می شود و به ایشان ستمی نمی و برای هر کس آنچه انجام داده است پوره داده می شود و خدا به آنچه ایشان می کنند داناتر است کافران گروه گروه به سوی دوزه اخرانده می شوند چون به آن برسند دروازه هایش باز می شوند و نگهبانان آن به ایشان می گویند آیا برای شما از میان خود شما پیانبران نیامده بودند که برای شما آیات پروردگار شما را می خواندند و شما را از روبرو شدند به این روز برحذر می گردانیدند می گویند آری ولی حکم عذاب بر کافران متحقق کردید به ایشان گفته می شود با درهای دوزخ درایید در آن برای همیشه باقی میمانید. و چی بد است قامت گاهی متکبران و کسانی که از پروردگار خویش ترسیدند گروه گروه به بهشت برده می شود تا اینکه به آنجا می رسند و دروازه های آن باز می شود و نگهبانان آن به ایشان می گویند سلام بر شما شادان باشید به با آن جاودانه درایید و می ستایش خدای را که وعده خود را برای ما بجاه کرد و ما را وارث زمین یعنی بهشت ساخت که در بهشت به هر جا که بخواهیم جاگوزیم می شویم و چی خوب است مزدی نیکوکاران و فرشتگان را می بینی که بر گرد عرش الهی حلقه زده به تسبیح و ستایش پروردگار خیشمش قولند و در میان مردم به حق حکم می شود و گفته می شود ستایش مرد خدای را که پروردگار عالمیان است